حکایت یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و سنایی بر او بگفت. فرمود تا جامعه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین به رهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای به افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود. آجس شد، گفت این چه حرام مردمانند، سگ را گشادند و سنگ را بسته، امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید، گفت ای حکیم از من چیزی بخواه، گفت جامعه خود میخواهم، اگر انعام آم فرمایی، رزینا من نوال کبر رهیر امیدوار بود آدمی، به خیر کسان مرا به خیر تو می نیست شر مرسان سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جام باز فرمود و قواپوستینی بر او مزید کرد و درمی چند